أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ن ربی غفور رحم من هرگز نفس خود را نمی کنم بیشک نفس أماری انسان پیوسته به بدی فرمان میدهد مگر آنچه پروردگارم رحم کند بیگمان پروردگارم آمرزنده مهربان است وقال الملك ائتونی به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدینا مكين أمین پادشاه گفت او را نزد من بیاورید تا او را مخصوص گردانم. پس چون یوسف نزد او آمد و با او صحبت کرد پادشاه گفت تو امروز نزد ما صاحب مقام والا و امین هستی قال جعلنی علی خزائن الارض اینی حفیظ علیم یوسف گفت مرا بر سرپرستی خزائن زمین قرار بده که من نگه دارند ای آگاهم و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوع منها حیث یشاق نصیب برحمتنا من نشاء ولا لا اجر المحسنین و این گونه بیوسف در آن سرزمین تمکن و قدرت دادیم از آن سرزمین هر جا که می منزل می گرفت. ما رحمت خود را به هر کس که بخواهیم میرسانیم و پاداش نیکوکاران را زایع نمی کنیم. و اجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون و یقینا پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آوردند و پرهیز گاری بهتر است. و جاء اخوت یوسف فدخلو علیه فعرفهم وهم هم منكرون و چون سرزمین کن آن را خوشک سالی فرا گرفت برادران یوسف برای تهیه گندم به مصر آمدند پس بر او وارد شدند آنگاه او آنان را شناخت در حالی که آنها او را نشناختند و لما جههزهم بی جهازهم قال اتونی بی اخل لکم من ابیكم الا ترون انی او فی الکیل و انا خیر المنزلی پس چون بار را آماده کرد به آنان گفت آن برادری که از پدرتان دارید نزد من بیاورید آیا نمی بینید که من پیمان را تمام می دهم و من بهترین میزبان هستم؟ فَإِنْ لم تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تقربون پس اگر او را نزد من نیاورید نپیمان این نزد من خواهید داشت و نه به من نزدیک شوید عنه أباه گفتند ما درباره او با پدرش با اصرار گفتگو خواهیم کرد و مسلما این کار را میکنیم. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يوسف بقلمانش گفت سرمایهشان را در بارهایشان بگذارید شاید هنگامی که به سوی خانواده خود بازگشتند آن را بشناسند شاید باز آیند له لحافظون. پس چون ب سوء پدرشان باز گشتند گفتند: ای پدر ما، پیمان از ما بازداشته شده است، پس برادر من را با ما بفرست تا سهمی بگیریم بی و بیگمان ما نگهبان او خواهیم بود، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يعقوب گفت آيا شما را بر همان گونه که پیش از این نسبت به برادرش امین داشتم پس خداوند بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است و فتحو متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت ایلیهم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 و چون بار خود را گشودند، سرمایهشان یافتند که به آنها بازگردانده شده است گفتند ای پدر ما ما دیگر چه میخواهیم این سرمایه ماست که به ما بازگردانده شده است پس او را با ما بفرست و برای خانوادی خود آزوغه میآوریم و برادر را حفظ می کنیم. و یک بار شطور افزون خواهیم آورد این پیمان برای عزیز مصر کار آسانی است قال لنرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتنني به الا ان يحاط بكم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَا مَا نَقُولُ یعقوب گفت هرگز او را با شما نمیفرستم تا آنکه به نام خدا به من پیمان دهید که حتما او را به نزد من باز خواهید آورد مگر اینکه قدرت از شما گرفته شود پس چون پیمان استوار به او دادند یعقوب گفت خداوند بر آنچه میگوییم نگهبان است. و قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و من ابواب متفرقه و ما اغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت و عليه فلي توكل المتوكلون. و همچنين به آنها گفت: ای پسران من از یک در وارد نشوید بلکه از درهای متفرق داخل شوید و من نمیتوانم چیزی از قضای خداوند از شما دفت کنم حکم تنها از آن خداست بر او توکل کرده ام هم و همه متوکلان بر او توکل کنند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 و اینه لذو علم لما علمناه ولیکن اکثرا ناس لا يعلمون و چون به همان گونه که پدرشان به آنها دستور داده بود داخل شدند این کار نمی چیزی از قضای خداوند را از آنان دفت کند جز حاجت و خواهشی در دل یعقوب که آن برآورده شد و بیگمان او علمی داشت که ما به او آموخته بودیم ولی کن بیشتر مردم نمی دانند دخلوا علی یوسف قال و چون برادران بر یوسف وارد شدند برادرش بنیامین را نزد خود جای داد و گفت بدون شک من برادر تو یوسف هستم پس از آنچه آنها انجام میدادند اندوگین مباش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 پس هنگامی که بارهای آنها محیا کرد جام را دربار برادرش گذاشت سپس ندا دهنده ای نداداد ای کاروانیان بدون شک شما دوست هستید قالوا واقبلوا علیهم ماذا تفقدون به طرف آنها رو کرده و گفتند چه چیز گم کرده اید؟ قالو نفقد صواع الملک و لی من جاء بهی حمل بعیر و لی جاء بهی حمل بعیر و به بهی زعیم گفتند پیمانی پادشاه را گم کرده ایم و هر کس آن را بیاورد یک بار شطر جایزه دارد و من زامن این بعده هستم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد الارض وما كنا گفتند به خدا سوگند شما میدانید که ما نیامده ایم تا در این سرزمین فساد کنیم و ما هرگز دوز نبود قالوا فما جزاء ان كنتم كذبين. آنها گفتند پس اگر دروغگو باشید کیفرش چیست قالوا جزاؤه منوجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين گفتند کیفر کسی که آن پیمان در بارش پیدا شود پس خودش کیفر آن خواهد بود که بردگی شما خواهد بود ما این گونه ستم را کی فرمیده ایم؟ فبدأ بأوعييتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءَ وَفَوْقَ كُلِّذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ پس شروع به جستجوی بارهای آنها پیش از بار برادرش پرداخت آنگاه آن را از بار برادرش بیرون آورد این گونه برای یوسف چاره اندیشی کردیم او هرگز نمی توانست در آین پادشاه برادرش را بگیرد مگر آنکه خدا بخواهد درجات هر کسی را بخواهیم بالا میبریم. و بالاتر از صاحب علمی داناتری است قالوا این یسرق فقد سرق اخل له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم يبدها لهم قال شر والله بما برادران گفتند اگر او دزدی کرده است تعجب ندارد برادرش نیست پیش از این دزدی کرده بود پس یوسف آن سخن را در دل خود پنهان داشت و برای آنها آشکار نکرد در دل خود گفت شما از نظر منزلت بدترین مردم هستید و خداوند به آنچه توصیف میکنید آگاه تر است بالو یا ایها العزيز ان له ابا شيخا فخذ احدنا مكانه گفتند ای عزیز همان او پدر پیری دارد که از دوری او سخت ناراحت می شود لذا یکی از ما را به جای او بگیر بیگمان ما تو را از نیکوکارن می بینیم قال <تصال> مَعَاذَ <arı> اللَّهِ اَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عنده اِنَّا اِذَلَّ ظَالِمُونَ یوسف گفت پناه بر خدا که ما جز آن کسی که کالای من را نزد او یافته ایم دیگری را بگیریم بی گمان در آن صورت ستمکار خواهیم بود فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرحل الأرض حتى يأذن لی أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين پس چون برادران از او نا امید شدند نجواکنان به گوش ای رفتند برادر بزرگشان گفت آیا نمی‌دانید که پدرتان از شما به نام خدا پیمان گرفته است و پیش از این نیز درباره یوسف کوتاهی کرده اید؟ پس من هرگز از این سرزمین بیرون نمی تا پدرم به من اجازه دهد یا خداوند درباره من داوری کند و او بهترین داوران است؟ ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان بنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين شما بسوي پدرتان بازگردید و بگویید ای پدرجان بیگمان پسرت دزدی کرد و ما جز به آنچه میدانستیم دانستیم ندادیم و ما از غیب آگاه نبودیم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون و از مردم شهری که در آن بودیم و از کاروانی که با آن بودیم بپرس و بدون شک ما راستگو هستیم. قال بل سولت لكم انفسكم امرات فصبر جمی عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحکیم. یعقوب <تصفيق> <تصفيق> گفت حقیقت چنین نیست بلکه هوای نفس شما کاری ناشایست را برای شما آراسته است پس کار من صبر جمیل است امید است خداوند همه آنها را به من بازگرداند بی گمان او حکیم است و تولا عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم باز آنها روی برگرداند و گفت افسوس بر یوسف و چشمان او از اندوه سفید شد در حالی که سرشار از غم بود اندوه خود را فرو می‌برد قالوا تالله تفاء تذكر یوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. گفتند به خدا سوگند پیوست یوسف را یاد می‌کنی تا آنکه سخت بیمار گردی یا بمیری قال انما اشكو بزدی وحزنی الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون یعقوب گفت من شرح غم و پریشانی خود را تنها به خدا میگویم و به سوی او شکایت میبرم و سوی خدا چیزهایی میدانم که شما نمی دانید یا بنی یذهبو فتح السسومی یوسف و اخیه و من روح الله ای پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا ناامید نشوید چرا که جز گروه کافران کسی از رحمت خدا ناامید نمی شود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 وجئنا ببضاعة مزجات فأوفی لنا الكیل وتصدق علینا إن الله یجزی المتصدقین پس چون به مصر رفتند و بر او وارد شدند گفتند ای عزیز به ما و خاندان ما سختی و ناراحتی رسیده است و اینک کالای ناچیز و اندکی با خود آوردی این پس پیمانه را برای ما کامل کن و بر ما صدقه و بخشش کن بیگمان خداوند بخشندگان را پاداش میدهد. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخيه اذ انتم جاهلون یوسف گفت آیا دانستید با یوسف چه کردید؟ هنگامی که نادان بودید قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخی قد من الله علينا اننه من یتق و یصبر الله لا یضيع اجر المحسنین برادران گفتند آیا به راستی تو همان یوسفی یوسف گفت آری من یوسفم و این برادر من است یقینا خداوند بر ما منت گذاشت همانا هرکس پرهیزگاری کند و صبر نماید بیگمان خداوند پاداش نیکوکاران را زایع نمی کند قالوت الله لقد آترک الله علينا و این کننا برادران گفتند به خدا سوگند یقینا خداوند تو را بر ما برتری داده و حقا ما خطا بودیم قال لا تثريب عليكم اليوم الله لكم وهو ارحم الراحمین یوسف گفت امروز هیچ سرزنشی بر شما نیست خداوند شما را میآمرزد و او مهربانترین مهربانان است اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا وأتونی بأهلكم اجمعین این پیراهن مرا ببرید و بر چهره پدرم بیندازید تا بینا گردد و همه خانواده خود را نزد من بیاورید. ولما فصلت العیر قال ابوهم اننی لا اجد ريح یوسف لولا ان تفندون. و چون کاروان از سرزمین مصر جدا شد و حرکت کرد پدرشان به اطرافیان گفت یقینا من بوی یوسف را مییابم اگر مرا به کم عقلی نسبت ندهید قالوا تالله انك لفی ضلالك القدیم. آنها گفتند به خدا سوگند بیگمان تو در همان اشتباه دیرینت هستی فلما ألقاه وجهه بصيرا پس چون على قَالَ بشارت دهند آمد و آن پیراهن را بر چهره او افکند ناگهان بینا شد گفت آیا به شما نگفتم که من از سوی خدا چیزهایی میدانم دانم که شما نمیدانید دانید یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا اینا کننا خاطئی گفتند ای پدر ما برای ما در باری گناهانمان آمرزش بخواه، بیگمان ما خطا بودیم قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم یا گفت به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می طلبم بدون شک او آمرزنده مهربان است فلما دخلوا على يوسف آوا الىيه ابويه وقال دخلو مصر ان شاء الله آمین. پس چون بر یوسف وارد شدند او پدر و مادرش را در آغوش گرفت و نزد خود جای داد و گفت همگی به مصر درائید اگر خدا بخواهد در امن و امان خواهید بود و رفع ابویه علی العرش و له سجده و قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد وجاء بكم من البدو من بعد الشيطان بيني وبين اخوتي این لما هو الحکیم و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی برای او به سجده افتادند و یوسف گفت ای پدر جان این تعبیر خوابم است که از پیش دیده بودم پروردگارم آن را راست گرداند و تحقق بخشید یقینا به من نیکی کرد هنگامی که مرا از زندان بیرون آورد و شما را از آن بیابان به اینجا آورد بعد از آن که شیطان میان من و برادرانم فتن و فساد کرد بیگمان پروردگارم به آنچه که میخواهد باریک بین است همانا او دانای حکیم است رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين پروردگارا بهره عظیمی از فرمان به من عطا کردی و از علم تعبیر خوابها به من آموختی پدید آورنده آسمانها و زمین توی کار ساز من در دنیا و آخرت مرا مسلمان بمیران و به شایستگان ملحق فرما ذالی کمین این غیب نوحیه ایلیک و ما کنت لدیهم ایز اجمعو امرهم ای پیامبر این از خبرهای غیب است که به تو وحی می کنیم و هنگامی که برادران یوسف بد انگیشی می کردند و تصمیم گرفتند تنازد آنها نبودی. و ما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. و بیشتر مردم و اگرچه بر ایمانشان هرس ورزی مؤمن نخواهند بود. و ما تسألهم عليه من اجر این هو الا و تو بر این دعوت از آنها پاداشی نمی آن جسپندی برای جهان یا نیست و من آیت فی السماوات والارضی يمرون عليها وهم عنها معرضون اچه بسا نشانهای در آسمان ها و زمین وجود دارد که آنها از کنارش میگذرند و از آن روی میگردانند و ما یؤمن امن بالله الا وهم مشرکون و بیشتر آنها به خداوند ایمان نمیآورند، مگر اینکه آنان مشکند تأتیهم غاشیت من عذاب الله او تأتیهم الساعت بغتت وهم لا لایشعون آیا ایمن هستند از اینکه عذاب فراگیری از سوی خدا به سراغ آنها بیاید یا ناگهان قیامت به سراغشان آید در حالی که آنان بیخبرند؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ي يامبر بگو این راه من است من با بصیرت کامل به سوی خدا دعوت می کنم و کسانی که از من پیروی کردند نیز چنین می کنند و خداوند پاک و منظه است و من از مشکان نیستم و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیه من اهل القرا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وما نزش از تو نفرستادیم جز مردمی از أهل غریهها كه به آنها وه میكردیم آیا مشرکان در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود و یقینا سرای آخرت برای کسانی که پرهیزگاری کردند بهتر است آیا نمی اندیشید؟ حتی اذا استیعس اسر انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین کافران پیوسته به انکار خود ادامه دادند تا آنگاه که پیام بران از قومشان ناامید شدند و مردم پنداشتند که به آنها دروغ گفته شده است در این هنگام یاری ما به سراغشان آمد پس هر کس را که خواستیم نجات یافت و عذاب ما از قوم گنهکار باز نخواهد گشت لقد کان فی قصصهم عبرت لئولی الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمه لقوم يؤمنون در درداستانهایشان عبرتی برای خردمندان است این قرآن سخنی نبود که به دروغ بافته شود بلکه تصدیق کننده کتاب است که پیش از آن است و بیان کننده هر چیز است و هدایت و رحمت برای گروهی است که ایمان می آورند. بسم الله الرحمن الرحیم الفلامم را تلك آيات الكتاب والذي انزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الف، لام، میم، را اینها آیات کتاب است و آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است ولی کن بیشتر مردم ایمان نمی آورند الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها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 خداوند کسیست که آسمانها را بدون ستون برفراشت که میبینید آنگاه بر عرش مستقر شد و خورشید و ماه را مسخر ساخت که هر کدام تا مدت معینی روان است کار و امور هستی را تدبیر میکند نشانهایی را روشن بیان میکند شاید شما بله‌قای پروردگارتان یقین حاصل کنید. و هو مَدَّ الْأَرْضَ الأرض وجعل فيها رواصي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين اللَّيْلَ الليل النهار این و او کسی است که زمین را گسترد و در آن کوه‌ها و نهرها قرار داد و در آن از هر نوع میوه ها دو قسم پدید آورد شب را بر روز میپوشاند. بیگمان در این امور نشانه ها و عبرت هاست برای گروهی که می وفي الأرض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل صنوان و غیر صنوان صنوان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 و در زمین قطعه‌های گوناگون کنار هم قرار داد و باغ‌هایی از انگور و کش زار و نخل‌هایی که گاه از یک بن میرویند و گاه از چند بن در صورتی که از یک آب سیراب میشوند و با این حال میوه بعضی از آنها را به بعضی دیگر برتری دادیم بدون شک در این امور نشانه هاست برای گروهی که خرد میبرزند و این تعجب فعجب قولهم ایذا کنا ترابا اینا لفی خلق جديد اولاد كالذين كفروا بربهم واولائك الاغلال في اعناقهم واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون باي پیامبر اگر از ایمان نیاوردن کفار تعجب میکنی پس سخن آنان عجیب تر است که می گویند. آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم بار دیگر زنده می و به آفرینش نوینی باز می گردیم؟ اینان کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شده اند و اینان قلها و زنجیرها در گردنهایشان است و اینان اهل آتش جهنم و جاودانه آن خواهند ماند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 و آنها پیش از نیکی بدی را به شتاب از تو میخواهند با اینکه بر امتهای پیش از آنها بلاها و عقوبتهای عبرت انگیز گذشته است و بیگمان پروردگار تو نسبت به مردم با وجود ستمکار بودنشان دارای مغفرت است و همانا پروردگار تو سخت کیفر است ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذروا ولكل قوم هاد و كساني كه كافر چرا نشانه‌ها و معجزه‌ای از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است ای پیامبر تو فقط هشدار دهنده ای و برای هر قومی هدایت کننده ای است الله یعلم ما تحمل كل انسا و وما تغيض الارحام وما تزداد و کلو عنده بمقدار خداوند میداند آنچه را که هر مادعی بدان باردار می شود و آنچه را که رحمها ها و آنچه افزون می کنند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد عالم الغیب و الشهادت الکبیر المتعال او غیب و آشکار بزرگ و بلند مرتبه است سواء من من اسر ومن جهره به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بنها برای خداوند یکسان است که کسی از شما پنهانی سخن بگوید و کسی که آن را آشکار سازد و کسی که در تاریکی شب پنهان شود یا در روشنایی روز آشکارا راه می له معقبات من بین يديه و من خلفي يحفظونه من امر الله. إن الله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 برای او فرشتگانی است که پی در پی صبح و شام از پیش رویش و از پشت سرش او را به امر خدا حفظ می کنند بیگمان خداوند حالت و سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد تا وقتی که آنان آنچه را که در زمیرشان است تغییر دهند و هنگامی که خداوند برای قومی به خاطر اعمالشان بدی را اراده کند پس هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و آنان را جز او هیچ کارسازی نیست او الذی یریکوم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. او کسی است که برق را برای ترساندن و امیدوار شدن به شما می نمایاند و عبرهای سنگین بار را پدید میآورد آبرد و یسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفته و الصواعق ووروس و بهشه شدید و, و رعد به ستایش او و فرشتگان از ترس او تصبیح میگویند و سائقه ها را میفرستد پس هر کس که بخواهد بدان آسیب میرساند، و آنها درباری خدا مجادله میکنند و او بسیار نیرومند است له دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشیء إلا إلا كباسط كفیه إلى الماء ليبلغفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا فِي ضلال دعوت حق از آن اوست و کسانی را که مشرکان مشركان بهجای او میخوانند هرگز دعوتشان را اجابت نمی کنند، مگر مانند کسی که کف دستش را به سوی آب میگشاید تا آب به دهانش برسد و هرگز به آن نخواهد رسید و دعای کافران جز در گمراهی نیست. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِ وَالْآصَان تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند از روی اطاعت یا اکراح و همچنین سایه هایشان صبحان و شامگاهان برای خدا سجده می کنند. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل افتخذتم من دونه أولياء؟ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضررا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ای پیامبر به مشرکان بگو پروردگار آسمان و زمین کیست بگو الله سپس به آنها بگو آیا به جای او اولیا و معبودانی برگزیده اید که مالک سود و زیان خود نیستند بگو آیا نابینا و بینا برابرند یا تاریکی و نور یکسان است؟ آیا آنها شریکانی برای خدا قرار داده اند که همچون آفرینش او آفریده اند پس این آفرینش ها بر آنها مشبه شده است بگو الله آفریننده ی همه چیز است و او یگانه چیز چیره است زلمین <تصفيق> فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل الزبد فيذهب و ا م ا الز ب د ف ي ذهب جفا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الانفال خداوند از آسمانها آب را فرو فرستاد پس رود خانه ها به اندازه خیش روان شد آنگاه سیل بر روی خود کفی بالا آمده برداشت و از آنچه برای بدست آوردن زینتالات یا وسایل زندگی آتش روی آن روشن می کنند کفی مانند آن به وجود می آید. خداوند مثال حق و باطل را اینگونه بیان می کند پس اما کفها کنار افتاده از بین می رود و آنچه به مردم سود می بخشد در زمین باقی می ماند اینگونه خداوند مثال می زند للذین استجابوا لربهم الحسنا والذین لم یستجیبو له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وماواهم جهنم وبیئس المصیر برای کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند پاداش نیک است و کسانی که دعوت او را اجابت نکردند اگر تمام آنچه در زمین است و نیز همانندش از آن آنها باشد برای رهایی خود از عذاب فدیه بدهند از آنها پذیرفته نخواهد شد آنها حساب سختی را خواهند داشت و جایگاهشان جهنم است و چه بد جایگاهی است اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّ كَالْحَقُ كَمَنْ هُوَ اَعْمَا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَبِ آیا کسی که میداند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است مانند کسی است که او نابی تنها خردمندان پند می‌گیرند. الّذین الله ولا همان کسانی که به پیمان خدا وفا می‌کنند و عهد و پیمان را نمی شکنند. والذین الله به وی صلوا ربهم وی احشون خافون سوء الحساب. و کسانی که آنچه را خداوند به پیوستن آن فرمانداد پی میدهند می دهند و از پروردگارشان می ترسند و از سختی حساب بیم دارند. وَالَّذِينَ نَصَرُوا بِنَصْرِهِ وَأَجْرِهِمْ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ الصَّالِحَاتِ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية ويدرؤون بالحسن السيئة أولئك لهم الدار. و کسانی که به طلب روی پروردگارشان صبر کردند و نماز را برپا داشتند و از آنچه به آنها روزی داده ایم پنهان و آشکارا انفاق کردند و بدی را بانیکی دفت می کنند پرجام نیک سرای آخرت از آن آنهاست جنات عدنی یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و و یدخلون عليهم من کل همان باقهای جاویدان بهشتی که وارد آن میشوند و همچنین هر کس از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که نیکوکار بوده اند و فرشتگان از هر دری آنان آن وارد می شوند. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار و به آنها میگویند سلام بر شما به خاطر آنچه صبر نمودی اید. پس چه خوب است عاقبت آن سرای جاویدان؟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 اولئک لهم اللعنه ولهم سوء الدار و کسانی که پیمان خدا را پس از استوار کردنش می شکنند و آنچرا که خداوند به پیوستن آن فرمان داد قطع می کنند و در زمین فساد مینمایند لعنت برای آنهاست و برای آنها سختی و بدی سرای آخرت است. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر و فرحو بالحياة الدنيا و الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. خداوند روزی را برای هر کسی که بخواهد وسیع می‌گرداند و برای هر کسی که بخواهد تنگ می‌دارد و کافران به زندگی دنیا شاد شدند در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت جز ها اینا چیز نیست وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَلَيْهِ و کسانی که کافر شدند میگویند چرا نشانه و معجزهای از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است ای پیامبر بگو بیگمان خداوند هرکس را به خواهد گمراه میکند کند و هرکس که باز و توبه کند به سوی خیش هدایت میکند. الذين آمنوا وطمأن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب همان کسانی که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا آرام میگیرد آگاه باشید تنها با یاد خدا دلها آرام می‌گیرند. الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوباء لهم و حسن مآب. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. برایشان خوشیست و بازگشتگاه نیکو دارند کذالک ارسلنا که فی امت قد خلت من قبلها امم قد خلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی اوحینا لِتَأْتِ وَعَلَيْهِمُ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ متاب. اینگونه تو را در میان امتی فرستادیم که پیش از آنها امتهای دیگر بودند و رفتند تا آنچه را به تو وحی کردیم بر آنها بخوانی. در حالی که آنها به خدای رحمان کفر میورزند بگو او پروردگار من است معبودی جز او نیست بر او توکل کردم و بازگشتم به سوی اوست ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا اَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لو يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد اگر چونین قرآنی بود که کوها به آن به حرکت آیند یا زمین به آن پاره پاره شود یا مردگان را به سخن آورد باز هم ایمان نمی آورند بلکه همه امور از آن خداست آیا کسانی که ایمان آورده اند هنوز ندانسته اند که اگر خداوند میخواست خواست قطعا همه مردم را هدایت میکرد کرد و پیوسته کسانی که کافر شدند به خاطر آنچه کرده اند بلاهای کوبنده میرسد. و یا به نزدیکی خانه آنها فرود می آید تا وعدي خدا فرار سد بیگمان خداوند خلاف وعده نمی کند. ولقد استهزئ برسل من قبل کف، فاملیت للذین کفرو ثم اخذتهم ثم اخذتهم فكيف كان عقاب و به راستی به پیش از تو نیز تمسخر و استهزا کرده شد پس من به کسانی که کفر ورزیدند مهلت دادم آنگاه آنها را فرو گرفتم پس بنگر مجازات من چگونه بود افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت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 و من یقلی فما له من هاد. آیا کسی که بالای سر همه ایستاده و نگهبان است همانند بتان است و برای خداوند شریکانی قرار دادند ای پیامبر بگو آنها را نام ببرید آیا او را به چه چیزی که در زمین نمی آگاه می کنید؟ یا سخن بیهوده میگویید بلکه حق این است که برای کسانی که کافر شدند مکرشان آراسته شده است و از راه راست باز داشته شده اند و کسی را که خدا گمراه کند پس هیچ راهنمایی برای او وجود نخواهد داشت. لهم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الاخره اشق و ما لهم من الله من واق در زندگی دنیا برای آنها عذاب دردناکی است و قطعا عذاب آخرت سختتر است و آنها را هیچ نگه ای از عذاب خداوند نیست مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت هل اکلها دائم و ظلها تلک عقبالذین اتقو و عقبالکافرین النار وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است چنین است که نهرها از زیر درختان آنجاری است میوه هایش همیشگی و نیز سایه اش دائمی است این از سرانجام کسانی که پرهیزگاری کردند و سرانجام کافران آتش جهنم است وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهِ قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعوا واليه و, و انب که به آنها کتاب دادیم از آنچه بر تو نازل شده خوشحال میشوند و از احزاب و گروه ها کسانی هستند که قسمتی از آن را انکار می کنند ای پیام بر بگو من معمورم که الله را بپرستم و به او شرک نیاورم و تنها به سوی او دعوت می کنم و بازگشت من به سوی اوست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 و این گونه این قرآن را به عنوان حکم و فرمانی به زبان عربی نازل کردیم و اگر بعد از آنکه آگاهی برای تو آمده از هوسهای آنها پیروی کنی در برابر عذاب خداوند هیچ کار ساز و نگه ای نخواهی داشت ولقد ارسلنا من قبل ک و جعلنا لهم ازواجو و ذریا و ما کان لرسول اي يأتي بآيت الا با الله لكل كتاب و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم و هیچ پیام بری حق نداشت که جز به فرمان خدا معجز ای بیاورد و برای هر امر و زمانی نوشته ای مقرر است یمحو الله ما یشاء و يثبت و خداوند هرچی را که بخواهد محو و هرچی بخواهد اثبات می کند و امل کتاب نزد اوست است. و اما بعض الذي بعضالذین عدهم آون توفیانک فاينما عليك البلاغ و الحساب و اگر برخی از آنچه را که به آنها وعده می دهیم به تو نشان دهیم یا تو را بمیرانیم در هر حال بر عهده تو تنها تبلیغ رسالت است و حساب آنها بر ماست ما أولم یاو آن ناتِ الأرض نقصها من اطرافِها، والله يحكم لا معقّب لحكمه و هو سريع الحساب. آیا نديد اند که ما پیوسته به سراغ این سرزمین زمين كفر مي آيم که ان را از اطراف و دامنه ها و خداوند حکم میکند و هیچ کس نمیتواند حکم او را رد کند و او سریع الحساب است. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار و به راستی کسانی که پیش از آنها بودند مکر ورزیدند و نقشه کشیدند پس تمام مکرها از آن خداست میداند آنچه را که هرکس انجام می دهد و به زودی کافران خواهند دانست که سرانجام سرای آخرت از آنی کیست وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَهُ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عنده عِلْمُ الْكِتَابِ و کسانی که کافر شدند می گویند تو پیام بر خدا نیستی بگو کافی است که خدا و کسی که علم نزد اوست میان من و شما گواه باشد بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان الیف كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الف لام را این كتابي اس كه بر تو اي پيام بر نازل تا مردم را به فرمان پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی درآوری، به سوی راه خداوند پیروزمند ستوده الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد همان خدایی که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و وای بر کافران از عذاب سخت الذین يستحبون الحياة الدنیا على الآخرة وصدون عن سبیل الله وبغونها عوجا اولئی فی همانا کسانی که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند و مردم را از راه خدا باز می دارند و کجی و انحراف آن راه را میخواهند، اینان در گمراهی دوری هستند وما اقسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ما هیچ پیامبری را مگر به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنها بیان کند پس خداوند هر کس را بخواهد گمراه میسازد و هر کس را بخواهد هدایت میکند و او پیروزمند و حکیم است ولقد ارسلنا موسى بایاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم و ذکرهم الله این فی ذالک لآیات لكل صبار شكور. و به ما موسا را با نشانه های خود فرستادیم و به او دستور دادیم که قومت را از تاریکی ها به روشنایی بیرونار و ایام الله را به یادشان آور بیگمان در این امر برای هر صبر کننده شکر کذاری نشانه است. و این قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم بلاء من ربکم به یاد هنگامی که موسی به قومش گفت نعمت خدا را بر خود به یاد آورید چون شما را از چنگال فرعونیان نجات داد که به بدترین عذابها شما را عذاب میکردند پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را زنده می گذاشتند و در این امر از جانب پروردگارتان برای شما آزمایش بزرگ بود و اید تأذن ربکم لئین شکرتم لأزیدنکم ولئین کفرتم این عذابی لشدید و به یاد آورید هنگامی را که پروردگارتان اعلام کرد که اگر شکر گذاری کنید یقینا نعمت خود را به شما افزون می دهم. و اگر کفران کنید بیگمان عذاب من سخته است. و قال موسی این تکفرو انتم ومن فی الارض جمیعا فإن الله لغنی حمید و موسی به آنها گفت اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید، پس خداوند هیچ زیانی نمیرسد. بیگمان خداوند بی و ستوده است الم یهتیکم نبع الذین من قبلكم قوم نوح <تصفح> و عاد و ثمود من بعدهم لا یعلمهم إلا الله ج هم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند مانند قوم نوح و عاد و سمود به شما نرسیده است؟ و خبر کسانی که پس از ایشان بودند که جز خداوند آنان را نمیشناسد. پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند پس آنها دستانشان در دهانهایشان گرفتند و گفتند ما به آنچه شما فرستاده شده اید کافرین و ما نسبت به آنچه ما را به سوی آن فرامی خانید سخت در شک و تردید هستیم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 قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين برانشان گفتند آیا در وجود خدا آفریننده آسمانها و زمین شک است او شما را فرا میخواند تا گناهانتان را برای تان بیامرزد و شما را تا مدت معینی مهلت دهد آنها گفتند شما جز بشری همانند ما نیستید میخواهید ما را از آنچه که نیاكان مان میپرستیدند بازدارید پس معجزه و دلیل آشکاری برای ما بیاوریم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء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 پیام برانشان گفتند ما جز بشری همانند شما نیستیم ولیکن خداوند بر هرکس از بندگانش که بخواهد مننت میگذارد و ما هرگز نمیتوانیم که معجزهای جز به فرمان خدا برایتان بیاوریم و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا ولا نصبر على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما را چه شده است که بر خدا توکل نکنیم در حالی که ما را به راه‌هایمان هدایت فرموده است و مسلما ما بر آزارهایی که به ما میرسانید صبر خواهیم کرد و توکل کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنند وَقَالَ الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ في ملتنا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ ربهم لنهلكن الظالمين و کسانی که کافر شدند به پیام برانشان گفتند ما قطعاً شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد یا اینکه به آین ما باز گردید پس پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که یقیناً ستمگران را نابود خواهیم کرد وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ انکم الارض من بعدهم ذالک لمن خاف مقام و خاف و شما را بعد از آنها در زمین سکونت خواهیم داد این وعده برای کسی است که از وقوف در پیشگاه من بترسد و از وعید من بیمناک باشد و وخاب كل جبار عنید. و پیامبران از خدا طلب فتح و پیروزی بر کفار کردند و سرانجام هر گردنکش و ستیز جو ناکام شد من ورائه جهنم من پشت سرش جهنم است و از آب چرک و خون نوشانده شود یتجرعه ولا یسیغه و ويأتيه المن و الموت من کل مکان وما هو بمیت و من ورائه عذاب غلیب که جرع جرع آن را می نوشد و نمیتواند آن را به آسانی فرو برد و مرگ از هر سو به سراغ او میآید در حالی که او نخواهد مرد و عذاب سختی در پیش رو دارد مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد و کسانی که به پروردگارشان کافر شدند، اعمالشان همچون خاکستر است که تند بادی در یک روز طوفانی سخت بر آن وزیده باشد. توان نگه داشتن را که به دست آورده اند ندارند و این همان گمراهی دور است. الم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن یشأ یذهبكم ویأتی بخلق جدید <متر> ای انسان آیا ندیدی كه خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است اگر بخواهد شما را میبرد و خلق جدیدی می آورد و ما ذلك على الله بعزيز و این کار بر خداوند دشوار نیست و برزول لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا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 قالوا لو هدانا الله لهدیناكم سواء علینا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محیص و در روز قیامت همگی در پیشگاه خداوند حاضر و آشکار شوند پس در این هنگام ضعیفان به مستکبران میگویند همانا ما پیرو شما بودیم پس آیا میتوانید چیزی از عذاب خدا را از ما دفع کنید آنها گویند اگر خداوند ما را هدایت کرده بود ما نیز شما را هدایت میکردیم چه بیتابی کنیم و چه صبر نماییم برای ما یکسان است هیچ کاری برای ما نیست. وان قال الشیطان لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ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 موسرخی یا اینی کفرت بما ما من قبل این الظالمین لهم عذاب علیم. و چون داوری و کار تمام شود شیطان گوید بیگمان خداوند به شما وعدی حق و راستین داد و من به شما وعده دادم آنگاه خلاف وعده کردم. من بر شما هیچ تسلطی نداشتم جز اینکه دعوتتان کردم. و شما دعوت مرا پذیرفتید بس مرا سرزنش نکنید و بلکه خیش را سرزنش کنید. نه من فریاد رس شما هستم و نه شما فریاد رس من. همانا من از اینکه مرا پیش از این شریک خدا ساختید بیزارم. ایگمان برای ستم کاران اذاب دردناکی است. ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم خالدین فیها بی اذن ربهم تحییتهم فیها سلام و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به باقهای بهشتی در آورده می که نرها از زیر درختان آنجاری است به فرمان پروردگارشان جاودانه در آن میمانند، و تهیت آنها در آن سلام تر كيف ضرب الله مثلا كلمة بة كشجرات طبه كشجرات ثابت وفرها في السم آیا ندیدی که خداوند چگونه مثل زده است؟ کلمه طیبه همچون درخت طیبه و پاکی است که ریشه آن در زمین ثابت و شاخهش در آسمان است توتی اکلها کل حین ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. هر زمان و فصلی میوه خود را به فرمان پروردگارش میدهد و خداوند برای هدایت مردم مسئله ها میزند باشد که متذکر شوند. و مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثت نجتستت من فوق الأرض و جتستت فوق الارض ما لها من قرار و مثل کلمه خبیث همچون درخت پلید و ناپاکیست که از زمین برکنده شده و هیچ قرار و صباتی ندارد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 خداوند کسانی را که ایمان آوردند با گفتار ثابت در زندگی دنیا و آخرت پایدار می دارد و ستمکاران را گمراه می سازد و خداوند هرچه بخواهد انجام می‌دهد. دهد الم تر الَّذِينَ بَدَّلُوا نعمت الله كُفْرًا و قَوْمَهُمْ قومهم دار آیا ندیدی آن کسانی را که شکر نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نابودی کشندند؟ جهنم یصلونها جهنم یصلونها و بئس القرار که همان جهنم است که آنها به آن درآیند و بد قرارگاهی است وجعلوا لله اندادا لیضلو عن سبیله قل تمتعو فإن مصيركم الى النار آنها برای خداوند همتایانی قرار دادند تا مردم را از راه او گمراه کنند بگو چند روزی بهره گیرید پس یقیناً بازگشتتان به سوی آتش هست قل لعبادی الذين آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا, و ينفقوا مما رزقناهم سرا و من قبل ان يأتیه يوم من قبل این یعطی یوم لا بیعن فیه خلال به بندگان من که ایمان آورده اند بگو نماز را بر دارند و از آنچه به آنها روزی داده این پنهان و آشکار انفاق کنند پیش از آن که روزی فرار رسد که در آن نخرید و فروش است و نه دوستی.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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ الله همان کسیست که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آبی گوارا نازل کرد پس با آن آب میبه های گوناگون برای روزی شما از زمین بیرون آورد و ها را برای شما مسخر گرداند تا به فرمان او در دریا روان باشد و نرها نیز برای شما مسخر گرداند و لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم اللیل والنهار و خورشید و ماه را که پیوسته در گردشند برای شما مسخر ساخت و شب و روز را نیز برای شما مسخر گرداند وَإِن تَعُدُّوا نعمت الله لا تحصوها اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار و از هرچه از او خواستید به شما ارزانی داشت و اگر بخواهید نعمتهای خدا را به شما رید نمی توانید آن را به شما رید. بیشک انسان ستمگری ناسپاس است و اذ قال ابراهیم ربی جعل البلد آمین و جنبنی و بنی الأصنام. و به یاد آورید چون ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را مکان امن قرار بده و مرا و فرزندانم را از آنکه بودها را پرستش کنیم دور بدار رب اینه هن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فروردگارا. بی گمان آنها بسیاری از مردم را گمراه ساختند پس کسی از من پیروی کند بدون شک او از من است و کسی که از من نافرمانی کند بی گمان تو آمرزنده مهربانی ربنا اینی اسکنتو من ذری بواد غیر ذی زرعی عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم, وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون پروردگارا من برخی از فرزندانم را در وادی خشک و بی آب و بی گیا نزد خانی گرامی تو ساکن ساختم پروردگارا تا نماز را برپا دارند پس تو دلهای گروهی از مردم را به آنها مایل بگردان و از میوه ها به آنها روزیده باشد که آنان سپاس گذارند ربنا إنك تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفی على الله من شيء في الارض ولا في السماء پروردگارا تو میدانی نچه را ما پنهان میكنیم و آنچه را كه آشكار میسازیم و چیزی نه در زمین و نه در آسمان بر خداوند پوشیده نمی ماند. الذي لله اللذي وهبني على الكبر اسماعيل و إسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ستایش از آن خداوند است که در سنت پیری. اسماعیل و اسحاق به من عطا فرمود، مسلما پروردگار من شنوندی دعاست. رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا پروردگارا مرا بر پادارنده نماز قرار بده و از فرزندانم چونین فرما. پروردگارا و دعای مرا بپذیر پذیر رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین پروردگارا مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را در روزی که حساب برپا می شود بیا مرز ولا تحسبن الله غافلا عما عم يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار و گمان ما خدا از آنچه چه ستم می غافل است نه بلکه کیفر آنها را برای روزی که چشمها دران خیره میشوند به تأخیر می افکند مهطعین مقنعی رؤوسهم لا یرتد إليهم طرفهم و هوا هوا. شتابان سرها رو به بالا گرفته و چشم بر نمی زنند و دلهایشان فرو ریخته و خالیست و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب فیقول الذین ظلموا, ظلموا ربنا اخیرنا این نجب دعوتك و نتبع رسول اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لكم من زوال به ای پیامبر مردم را از روزی که عذاب به سراغشان می آید به ترسان. آنگاه آنان که ستم کرده اند گویند پروردگارا ما را تا یک مدت نزدیک و کمی مهلت بده تا دعوت تو را اجابت کنیم و پیامبران را پیروی نماییم به آنان گفته می شود آیا شما نبودید که پیش از این سوگند یاد می کردید که هیچ فنا و زوال برایتان نیست؟ في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم و در مسكن كساني که به خیشتن ستم كردند ساکن شدید و برای شما روشن شد كه با آنها چگونه رفتار كرديم و برای شما مثلها زدیم و قد مکرو مکرهم و الله مکرهم و این کان مکرهم, مکرهم لتزول منه الجبال و براستی آنها نهایت مکر خود را به بردند و همه مکرشان نزد خدا آشکار است و هرچند که با مکرشان کوها از جا کند شود فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله این الله عزیز زنتقاب پس گمان مبرک خداوند وعد را که به پیام برا نشداد خلف وعده کند بیگمان گمان خداوند پیروزمند انتقام گیر است يوم تبدل الأرض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار روزی که این زمین به زمین دیگر و آسمان ها به گونه ای دیگر مبدل می شود و آنها همگی به پیشگاه خداوند یک تا قهار ظاهر و آشکار می شوند و المجرمین و در آن روز مجرمان را دست و پا به هم بسته در قلها می بینی. سرابیلهم من قطران سرابیل من قطران و تغشه از قطران است و چهره هایشان را آتش جهنم می پوشاند لیجزی الله كل نفس ما كسبت ان الله سریع الحساب تا خداوند هر کس را به سزای آنچه کرده است کیفر دهد همان خداوند سریع الحساب است هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ولي هو اله واحد ولي أولو الألباب. قرآن مردم است و تا بدان حشدار یابند، و تا بدانند که او معبودی یک تاست، و تا خردمندان پند گیرند،